قهبه پیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شاهنه معذور از مردم آزاری جوان گوشنشین شیر مرد راه خداست که پیر خود نتواند س گوشه‌ای برخواست جوان سخت می‌بایرد که از شهوت بپرهیزد که پیر سوست رقبت را خدالت بر نمیخیزه.